فصل دوازده تاکسی که سوار شدم از کونیگ بوی استفراخ گرفته بود شانس گوه هم همیشه شبا میخوردم به پست تاکسی استفراخی بوی استفراخش وقتی غیرقابل قابل تحمل تر میشد که میدیدم شنبه شب و خیابونا حسابی خلبت و ساکت پک و توک آدم میدیدی گاهی مرد و زنی که دست دور کمر هم انداخته بودن از خیابون رد می شدند یا مثلا ارازلو که از قرارهای شنبه شبشون می اومدن و به بیم از زه ترین شکل ممکن می خندیدن خیلی است که این وقت شب توی خیابونه خلوت نیویورک را بزنی چون از شهست کیلومتریم هم میشد صدا رو شنید تازه افسرده ترت میکنه و خیال می از همیشه تنها تاری. خیلی دلم میخواست میرفتم خونه تو با فیبی چاخان به بافم و این حرفا یکمی که گذشت سر صحبتم با راننده باز شد اسمش هورایتز بود از اون راننده قبلی که خیلی بهتر بود حس کردم از مرغابی های پارک خبری داشته باشه پس پرسیدم هورایتز تا حالا از دریاچه پارک مرکزی رد شدی؟ همونی که زل جنوبی پارکه چی طالاب دریاچه کوچیکی اونجا همون که مرغابیان همونجا دیگه آره آره خب که چی اون مرغابیا که تو بهار دور شنا میکنن ممکنه بدونی زمستون کجا میرن کیا کجا میرن مرغابیا دیگه اونها کجا میرن کسی با کامیونی چیزی میاد میبرتشون یا اینکه خودشون پرواز میکنن میرن سمت جنوب که گرمتره. تره آقای هروید سرشو بالا گرفت و نگام کرد میخورد از این آدم عصبی باشه البته آدم بدی هم نبود به هم گفت من چه میدونم چرا باید همچین چیز احمقانه یا بدونم خیلی خوب نمیخواد خودتا ناراحت کنی میخورد حسابی ناراحت شده باشه حالا که خودشو ناراحت کرده من ناراحت نیستم دیدم دالفاز حساس بودم برمیداره بیخیال حرف زدن شدم ولی دوباره خودش شروع کرد باز سرش رو گرفت طرف من که ماهیایی هیچ جا نمیرن ماهی همیشه همونجایی که هستن میمونن تو خود دریاچه؟ چه <تصفح> ماهیه فرق دارن آره ماهی فرق داره میخوام بدونم مرغابیا چی میشن حالا چه فرقی دارن اونا هم ماهیان دیگه <تصفح> یه جورایی حق به جنب حرف میزد انگار ارث پدرش از من طلب داشت تازه زمستون برا ماهیا سختتر از مرغابی ها میگذره. یه فکر کنی میفهمی؟ یه لحظه هیچ چی نگفتم؟ بعدش در اومدم که باشه، ولی وقتی دریاچه یتی که یخ شده و مردم روش اسکیت بازی میکنن ماهیا چیکار میکنن؟ آقای هویتز دوباره سرشو بالا گرفت که منصورت چیه چیکار کار میکنن؟ جدی جدی داشت داد میزد پسر. معلومه دیگه همونجا میمونن <تصفيق> نمیتونم بیخیال که نه اصلا نمیشه کی بیخیالش شده حالا؟ کسی که بیخیالش نشده همچین به حیجان افتاده بود که گفتم الان ماشینو صاف میکوبونه تو تیر چراخ برخ اونا همونجا تو یخ زندگی میکنن طبیعتشون اینجوریه تموم زمستون رو همینطوری یخ زده اون تو میمونن <تصفيق> راستی؟ خب پس چی میخورن؟ اگه یخ زدن و تکون نمیخورن که نمیتونن شنا کنن و غذا گیر بیارن بدنشون وای خود از دست تو تو حالت خوبه پسر بدنشون از همون جلبک ها آتاش توی یخ تغذیه میکنه واسه خودش رو بدنشون یه سری منافذ داره که غذا رو جذب میکنه طبیعتشون اینجوریه دیگه میفهمی چی میگم؟ یه بار دیگه سرشو گرفت طرفم تو نگاه میک آهانی گفتم و دیگه بی شدم گفتم الان که دیگه بریم قاطی باغالی ماغالیا اونقدر حساس بود که نمیشد باهاش سر هیچی بحث کرد دوست داری یه نگهداری با هم بریم یه دیرینکی بزنیم؟ جواب نداد گفتم داره با خودش فکر میکنه پس دوباره پرسیدم واقعا آدم بدی نبود معاشرت باش آدم سرگرم میکرد وقت واسه این کارا ندارم رفیق اصلا تو چند سالته چرا الان خونه نیستی لاله کنی خوابم نمیاد وقتی کنار کلوپ ارنی پیاده شدم و پولمو حساب کردم دوباره حرف ماهی رو پیش کشید آقا خودشم کرم داشت ببین اگه تو ماهی بودی خود طبیعت ازت مراقبت میکرد مگه نه ها؟ تا که نمی بگی وقتی زمستون میشه همه ماهی آواز بمیرن <تصفح> نه ولی همین دیگه اینو گفت و گازشو گرفت و رفت رفت گرفت هرچی می گفتی نراحت می شد واقعا زیادی حساس بود دیر وقت بود ولی لب به لب تو کلوپ آدم چسبیده بود یا بچه پیش دانشگاهی و کالجی عوضی تقریبا تموم مدرسه های دنیا به خاطر کریس محصول می میکردن جز مدرسه کفتی ما هنقدر شلوغ بود که نمیشد حتی کتتو بسپوری به پیش خدمت البته توی جم سکوت برخرار بود چون ارنی داشت پیانو میزد همچین پشت پیانو مینشست انگاری داره آپولو هوا میکنه یک بعد جوری قیافه میگرف انگاری هیچ هست و گرد پشم نمیرسه سه تا زوج کنار دستم منتظر بودن جا بازشه، شه همه شون پا وایستده بودن تا ارنی تماشا کنن آینه بزرگی گذاشته بود جلو پیانو یه تکنوری انداخته بود رو خودش که قشنگ قشنگ واسه همه تو ویترینی باشه اصلا وقتی میزد انگشتشون انگوشتشو نمی اون صورت گنده زشتشو می دیدی. چه خبر بود اسم آهنگی که موقعی اومده هم داشت میزد زد ولی هرچی بود حسابی تر زده بود بهش به اوج موسیقی که میرسی جوگیر میشد رو بالا میگرفت و ژامبولر بازی در می آورد خب که چی؟ که داره پیانو میزن خبر مرگش باید میدیدی جماعت چه سر و دستی میشکنن براش بالا می آوردی یکی باید جلی این جمعه میگرفت اینا همون مشنگایی بودن که سر صحنهای بیمزهی فیلم به هر میافتادن به خود اگه پیانیست بودم یا بازیگر یا هر چیز دیگه ای و این جماعت خیال میکردم برای خودم کسی هستم ریده میشد تو اصابم حتی دوست نداشتم تشویقم کنن مردم همیشه برای چیزایی مسخره کف میزنن من واقعا اگه پیانیست بودم تو کمد خونم پیانو میزدم حالا وقتی کف زدنشون تموم شد ارمی روی صندلیش چرخید و خیلی متوازه سرش رو خم کرد حالا انگار چیکار کرده؟ توهم متوازه بودن زده بود تفلک البته که نبود فقط نوازنده خوبی بود از اون روز روزگار بود آدم زیادی خود چیفته باشه همین میشه دیگه یه جوره وقتی کارش تموم شد دلم با سوخت سخت گمونم دیگه حتی نمیدونست درست میزنه یا نه گناهی هم نداشت گناهش گردن اون عوضی که هر کاری که میکرد براش کف میزدن این جماعت کافیه کوچکترین فرصتی پیدا کنن تا هر کسی رو به اشتباه مندازن بازم تریپ افزوردگی برداشتم و ناامید شدم نزدیک بود برام کتم و پس بگیرم و برگردم هتل. ولی خیلی زود بود و همچنین دوست نداشتم تنه باشم آخر سر یه میز بوگندو بهم دادن اونم ته سالن درست پشت ستونی که اصلا نمی شده از اونجا چیزی دید. از اون مدل میزیه ریزی که وقتی میخواستی بری پشتش بشینی بعد از بغل دستی یاد میخواستی به را بدن که اون هرروم زاده هم معمولا این کارو نمیکردن و مجبور می شدی از روی صندلی یا رچی سفارش دادم. جا انقدرخرتوخر و تاریک بود که فرق بچه 6 ساله رو با مرد 90 ساله نمیفهمیدن اصلا برشون مهم نبود هر چی میخواستی ورات حتی اگه معتادم بودی کسی کاری باهد نداشت یه مش لاشی دارم کرده بودن روی میز کوچی سمت چپم درست بالا سرم یه دختر پسر مسخره نشسته بودن خس و بودن شام کمی بزرگتر مسخره بود معلوم بود حواستشون جمع جمعه که زیاده روی نکنن چون کار دیگه ای نداشتم یه کمی به حرفشون گوش دادم پسر سر دوش برای دختر از بازی فوتبالی که غروبی دیده بود میگفت باور کنید برش لحظه لحظه ی بازی رو گزارش میکرد خسته کننده تر از این آدم به عمرم ندیده بودم معلوم بود طرفشم حال نمیکنه ولی از این بابا مسخره تر بود یعنیم هم برای همین گوش میداد. از اون ایک بود دلم برای هر دوتاشون سوخت. بایی نمیتونستم نگاهشون کنم مخصوصا حالا که داشتن درباره بازی مسخره فوتبال و میکردن حرفای آدمایی میز سمت راستیم هم که مزخ بود پسر شبیه این دانشگاه یل رفته بود با اون فلانل خاکستری مسخر و جلقی زشتش تمام اینایی که دانشگاه یل میرن شبیه همه پدرم میخواست برم یلو یا اگه شد برم بیرینستون ولی امکان نداره پامو بذارم توی یکی از این دانشگاه زنجری حتی اگه اعدام هم هم کنن این کارو نمی کنن. محاله ولی دختری که باهاش بود خوب تیکهی بود پسه مهره که بود ولی باید حرفاشو میشنیدی اولین اینکه هر دوتاشون یکمی مشنگ میزدن و یارو سعی میکرد از زیر میزم که شده کارایی بکنه و همزمان برای دختره تعریف میکرد چطوری همتاقیش توی خوابگاه بخوردن یه عالم قرص آسپیرین نصف نیمه خودکشی کرده طرفم مدام میگفت آخ چقدر بد نکنی که عزیزم بس نکندی که نه نه نه اونجا نه فکرشو بکن که موقعی ور رفتم با طرف براش زر خودکشی یه یارویم بزنی این چیزا بد جور در میورد. همینطور تنهایی برای خودم نشسته بودم کاری جز خوردن و سیگار دود کردن نداشتم با خودم گفتم چیکار کنم یهو به پیش خدمت گفتم که به ارنی بگه دلم میخواد بیاد پیشم بشینه گفتم بگه داداش دیبی ولی گمون نکنم پیغامم رو برسونه این عوضیا ها هیچ وقت پیغام آدمو رو نمیرسونن یهو یه دختری اومد بالا سرم هولدن کالفید؟ اسمش؟ لیلیان سیمونز بود برادرم دیوی هر از باش بیرون میرفت رفت خوشخد و بالا بود یه سلامی بهش دادم و سعی کردم از روی احترام بلنشم ولی بلند شدنم کار حضرت فیل بود همراه یکی از این افسرای نیروی دریایی بود انگاری زیر یارو پونز گذاشته بودن یه جا و بود لیلیان گفت که از دیدنم خیلی خوشحال شده پسر حرفش ته جل بود داداش بزرگت چطوره؟ از اولشم هم باید همینو میپرسید خوبه رفته هالیوود رفته هالیوود؟ واو چقدر خوب هالیوود چی کار میکنه؟ نمیدونم مینویسه دوست نداشتم حرف دیبیو بزنم معلوم بود لیلیان حسابی از اینکه دیبی رفته هالیوود کیف کرد و از این حرفا همه کف میکردن مخصوصا اونایی که تا حالا داستانشون نخونده بودن اما کف نمیکردم تازه حال من بد میشد لیلیان گفت چقدر حیاجانانگیز بعد منو به این یارو دریایی معرفی کرد اسمش ناخدا بلوپ یا همچین چیزی بود از این آدمایی تیپ غلط اندازی که فکر میکردی کمی زنانگی داره البته اگر انگشتاتو موقع دست دادن نمیشکست خدای از این فکر متنفرم تنهایی جونی؟ لیلیان همچین بین میزا وایستده بود که رابندون شده بود معلوم بود دوست داره علیکی راه و بند بیاره پیش خدمت منتظر شد تا از سر راه کنار بره ولی اون عین خیالش هم نبود مسخره. تابلو بود پیش خدمت ازش خوشش نمیاد تابلو از اون این بود که همین دریایی هم ازش خوشش نمیومد باش بیرون اومده بود ولی ازش خوشش نمی اومد منم که عمرن ازش خوشم بیاد هیچکی ازش خوشش نمیومد یه جورایی دلت به حالش میسوخت. جونی تو با خودت قرار گذاشتی حالا دیگه وایستاده بودم و لیلیان حتی بهم هم نمی بشین از این مدلایی که کلی آدمو رو میکنن دیگه به یارو دریایی گفت خوشتیپ نیست؟ هولدن تو لحظه به لحظه خوشتیبتر میشی یارو رو کشید کنار رو گفت که راه و بند آورده لیلیان گفت هولدن بیا پیش ما لیوانت هم بیار نه nah, دیگه داشتم میرفتم با یکی قرار دارم تابلو بود مهربونیش تظاهره که مبادا یه وقت به دیبی بگم فلانی و دیدم و تحویلم نگرفت خب باشه داداش تو دیدی بهش بگو ازش بدم میاده بعدش رفت منو یارو دریایی یکمی کمی با هم تارف رد و بدل کردیم که از دیدن هم خیلی خوشحال شدیم و از اینجور جور مزخرفات تکراری آدم باید از این تارفو بکنه تا اموراتش بگذره چون به لیلیان گفته بودم با کسی قرار دارم بعد از اونجا می زدم بیرون دیگه اصله این موندن اونجا و شنیدن صده چرند پیانه ارنی هم نداشتم اینو مطمئن بودم که دوست ندارم کنار لیلیان سیمونز و اونیو دریایی بشینم و از کسالت دیخ کنم و خاطر همین رفتم وقتی که تمام میپوشیدم، داشتم از عصبانیت منفجر می شدم ملت فقط بلدن گند بزنم به حالت